السلام عليكم السلام عليكم وسيد المسلمين وعلي وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستأثر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقها الصين فخرز في كل قبر قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لما فعل فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم يبتى قال لعله يخفف عنهما ما لم خب. قبل قبل أن يتم ما واحد في الخيمة أعتادين كذا إن حديثها تشارب بعد أن بختی کوتاهی پیرامین عبدالله الله بن عباس عبدالله الله بن عباس ابن عبد المطلب از عموی رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که رسول الله فرود شدن عمرش 10 سال یا در بعض در روایت مده که 15 سالش بود عبدالله الله بن عباس در سال 78 هجری قمری فرود شده عمرش هم اولوش 70 تا 72 سال بود و در آخر چشماشم در در آخر عمرش چشم‌هاش از دست داده. یک فضیلتی هست که خداوند این صحابی داده چون در حدیث اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند کسی که من چشمم رو در دنیا ازش بگیرم در آخرت به اون من بهش بهش خواهم داد. و خودش عبیاتی هم سرویدند که من اون به خیلی سمیده که معنا شبتم امیدیت اگر خداوند نور دو چشمم را برده اون دو نور را در در شنبایی و قلبم گذاشته در فهمم گذاشته یا در زبانم عبیاتی هم سرویدند که امام ابن سعد در کتاب طبقاتش زک میکنه. کنه و این امام حجر در اصابه و دیگر کتاب ها شده این عبیاتی که سرویدند در بحث نابینایش کل ربایتی که عبدالله بن عباس داره این چیز تکالا شمارش رو ده 1660 حدیث کل احادیتش کل احادیت 1660 از جمله ربایتی که در صحیح بخاری و مسلم با هم حد افتاد پنج تا حدیثه و پنج تا علیه و ده تا فقط در بخاری صد ده تا فقط در بخاری و چلونون تا فقط در صحیح مسلم كل روايات عبد عبدالله بن عباس و در صحیحین و خارج الصحيحین عبدالله الرحمن مشهور به تفسیر قرآن که خود رسول الله صلی الله علیه و هم دعا کردن در حق ایشان که خداوند فقه و فهم قرآن را بهشان یاد بده و ابن عباس عباس برای تفسیر قرآن داشتن و زیادی از صادقین از اشان شنیدند و جزء مشهورترین اصحاب از تفسیر قرآن خب عبدالله بن عباس می‌دێت که رسول الله صلی الله علیه و سلم از کنار دو تا قبر عبور کردند از کنار از دو تا قبر عبور کردن در بعضی از روایت ها آمده در قبر هایی جدیده. دو تا قبر جدید. و در بعضی از روایت آمده این دو تا قبر هم در بقیه بوده. حالا چه حکمی ما ازفاده می از این که این دو تا قبر جدیدند و یا در بقیه هم خواهم بود؟ قبر لازم اون. معنای کلی این روایت اگر ما بگیریم من را این پولیش اول برسیدی بیام به بحث تفسیر و قطعه قطعه معنی کردن و مسائل استخراج کردن از این حدیث. در این حدیث اشاره ای هست به این که انسان اگر دوچار گناه بشه به خاطر اون گناهش در قبل عذاب میده. خب شما در بحث عقیده مسائل در ایمان خوندید مسائل در ایمان چه اشخاصی گفتن که ایمان ما مثل ایمان صحابه و ایمان پیامبران هست و گناه هیچ تحصیل در ایمان نداره چه اشخاصی بودن مرجه مرجه گفتن هرچی گناه بکنی ایمانت ثابت خب بیاییم مرجه حیبندگان خدا با این احادیث چکار می کنید وقتی که اشخاص در قبرشو خابونده میشن و عذاب میبینن این حدیث صریح یعنی این دو شرط عذاب میبینن برسول الله هم قدرتی به خداوند داد که اون دو شرط را ببینن خداوند به اشخاص داد که اون دو شرط را ببینن و دیدن و گفتن که عذاب میبینن بخاطر چی؟ خاطر ادران یا قاب خب نشستن یا بلفرد حدیدن اون نجاست بر لباس ایشان و مسئله دیگر مسئله غیبت رو نمیده این اشخاص خاطر این دو تا گناه کفر نیست کفر نیست خاطر این دوتا گناه عذاب میدیدن خب وقتی که مرجه این چین از اللی رو ببینن مسلمن برای خودشون باید یک تحلیلاتی داشته باشه که این تحلیلات ما در وقت شبهات مرجه پاسخ بهش دادیم بر بگرد نشان نوار بر بگردی خلی رو دوباره بشته یک مسئله که الان میشه مطرح میشه الان عذاب قبر فاین فا این در بفاری و مسلم و صحیح و صریح عذاب قبری هست رسول الله گفتن این دوتا شخص عذاب میبینند الان این دوتا شخص خودشون یا روحشونه یا هر دوتا با هم. کدوم یک عذاب میبینند چی میگین شما هر دوتا کسی از دیگر یک از این دستور روح خوب بیان و گفتن روح جسد هم در خوب اول اول مرجعه نه روح جسد نه و جسد گفتن مومن. نه روح و نه جسد. بعد از مرژه های مرژه های غالی علا این مذهب جهمینه از درست. مذهب جهمیه و مذهب منکرین معاد. که انسان دوباره روزی رساخید خواهد داشت و دوباره از قبل بعد خواهد شد. منکرین گفتن نه روح و نه جسد هر دو تا عذاب نمیبینن. خوال دوباره این که عذاب فقط بر روح واقع میشه این مذهب ابن ای جریب و استدلال میکنه به قصه فلیب استدلال میکنه به قصه فلیب که این پول مرضوزی بر جسد تنها هست قصه مرضوزی عزی یعنی که به قصه استدلال بشه فقط جسد عذاب میبینه قول اشتباه چون این واقعی خاصی بود واقعی خاصی بود برای ابو جهل و دیگر اطباعش که خداوند این خدرت رسول الله میده که با اونها مقاطر و قرار بده و با اونها بگه ای ابو جهتی دیدی که خودمان چه برای سرطه رو بود قول سعبون این که قول خیلی هاهم هست مثل ابن حد که میگه عذاب فقط بر روح واقع میشه اما جست هیچ عذاب نمی نمیشه روح تنها. خب اصل اتات این, ش... این قول اساسش یک شملی هست در ذهن ایجاد میشه. یک شخصی میمیره در دریا مایه ها او را میخونند. الان شما اهل سنتی که میگید که میخوایید قول چارم اما این که قول اهل سنتیست در عقاید اهل سنت امده که عذاب روی روح و جسد هر دوتا واقع میشه. خب شما یه اهل که میگید روی روح جسد واقع میشه. یک شخصی که در دریا غرق میشه و مایا او را میخورند جسد عذاب میبینه؟ این شبهه سبب شده که اینها بگن عذاب فقط بروی چی؟ بروی روح ایجاد میشه، واقع میشه. اما جسد خیر. این یک شبهه عقلی. شبه عقلیه، یک شبهه عقلیه که تعارض داره با نصف تاریخ. مثل حديث ابراه بن عدي عبد مرتضى احمد و سنان ابي داوود ك ميجي عند الرسول صلى الله عليه وسلم در بقي نشسته بوديم كان على روسنا طير مسك كان عندهاي و سنه مون نشسته بودن اني شدت استيطان اونها رو بياسن في بيات كه ما شديدن توش ميداديم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم داد صحدي روح المؤمن كه ها ده دست از مؤمني گرفته نشه بتوابي كما كان كا كا كأن الماء يخطر من في السطح. نقرأ في حكاية الآبل. ال يعني برائحته روح المؤمن كشدني بشه. فعندما روح المؤمن مياد مير بالا وبعد برد دوباره لبرة جسده. من جهاز كذي سؤال ميشه. من جهاز سؤال ميشه. من رب ودين ومن نبيه. في نفس سؤال ميشه. بعد را. يا مؤمن يا كافر کارهایی از بهش و در از جهنم باز میشه حتی حتی اینکه عذاب روی روح جسد واقع یا نه صریحا حالا ما مشکلی عقلی به ما پیش میاد چیکار باز بکنی بر باز کنی به موجب یا به با مفسر وقتی که مفصل اون چیزی که تفصیلش، اون چیزی که دقیقش واقع نه اون چیزی که شک و و متشابهی هست که ما در ذهنمون اونشکار ایجاد میکنه حالا این شخص چی میشه چه میشه ما میگیم خداوند بر هر کاری قادره. بر هر کاری قادره. شاید خداوند بر قسمتی از اجزاش اون عذاب و واقع بکنه. بر قسمتی اجزاش یا به یک طریق ای دیگری این که ماده از ماده از از همین زمینه و خداوند میتونه همین چیزی را دوباره مهیا بکنه و عذاب بر اون شخص واقع بکنه. خداوند قادره بر هر کاری. و خداوند بر هر شخصی با آنچه که مستحق هست برخورد میکنه و این از کمال عدالت خداونده حالا همین مذهب اهل سنت امام مده میاد میاد تفصیلش یعنی می دوستان مبصل جوابش میده. ده اینکه حالت هایی که, که روی با جسد همراه هم عذاب میبینه مختلفه این برخوضا یا اون تفاولی که روح با جسد داره مختلف یک حالتی که روح به تنهایی عذاب بیدنه یا یک نعیم از نعیم بهشت بهش خواهد داشت یک حالت خاص. منفصل از جسد حالت این هست میترین مثال روزنی روح به تنهایی عذاب ببینه یا روح به تنهایی درخوشی باشی سهده ارواح همون بلک رسولا میفرد ارواح همون تی اجواف تطایر معلقن جعلقو من شجبر جنه حکم اقل صد الله علیه و سلسل روح های سهده در آویزونن یا در منقار فرندگان آویزونن به درخت های بهشتی به درختان میخورن این حالتی یک از حالتهای روز روح به تنهایی منفصل از جسد یک خوشی داره همون به خوشی داره میتونه هم همون روح به تنهایی عذاب داشته باشه این حالت اول حالت دوم اینکه روح به جسد متصل باشه و اون جسد حالا یا از جسد خوشی یا عذاب داشته خوشی یا عذاب داشته باشه حالت دوم که بحث حدیث برادرنا عازم بود که روح مؤمن میره بالا بعد دوباره به قبر میگرده و متکرر حالت سوم اگر به جسد متصل نباشه روح از بدن گرفته بشه آیا جسد به تنهایی عذاب میبیند یا نمیبیند یا, یا عذاب یا خوشی اینجا عالمه اهلتونت اختلاف دارد یک موقعی هست که این روح از جسد گرفته میشه درست در همه قطعه برابن عوضه روح از مومن گرفته میشه به حالا این لحظه که الان جسد هست جسد یا در بیمارستان نگه داشت یا در خانه هست انون زف نشده در این موقع آیا این جسد عذاب میدیند یا نه اینجا علمای اهل سنت اختلاف دارن که بیشتر علما بر این که چی؟ عذاب و خوشی ندارد در اون لحظه جسد یه قسمت و بعضی هم گفتن که نه که عذاب دارد. ف... من شاء اختلاف الجنويا وحاق وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعوض عليها غدوبا وعشية غدوبا وعشية وحاق بآل فرعون العذاب الآن جسد فرعون جاهز في شديانة نجاهز في شديد رأسه مميز رأسه عذابه بين يديانه ها اینجا مورد اختلافه. خدا میگه چی؟ انا رویون علیها علیه و خب این آدش ما نمیبینیم. این منشه اختلافه. به خاطر همین جمهور علما گفتن جمهور علما گفتن که این جسدی که از روح جدا شده به و این جسد دخنه شده و ما میبینیم این جسد عذاب نمیبینه. شاید خداوند در جای دیگری چسدی بهش مهیا بکنه یا نکنه. یا همون در روشش شهید در بهش هست خداوند روح اینها رو تحقا عذاب این در علم ما نیست در علم خداوند ده ما نمیتونیم براش جوابی داشته باشیم. چطور هست درمید ما نمیدونیم. خب این بحث که در این حدیث هست. بینیم اللہ در تحصیل حدیث از لحاظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از کنان دو قبول بی ما گفتیم که در بعد از سنو که روایتونی به قبر جنیده دو تا و در بعض از روایات اومده که چی در بقیه غرقل بود بعض از علماء گفتن از همین مرجعه به عجز مرجعه و بعض از اهلتونه. گفتن که این دو تا شخص اصلا مسلمان نبودن کافر بوده. مسلمان نبودن کافر بوده. حالا مرجعه اگر میشنین بهانه و حیله یه وردن بخاطر چیه؟ بخاطر این که بگن که چی؟ که مومن عذاب نمیبینه اما اهلتون نه از جای دیگره مشکلشون از جای دیگره. اون چیزی که برای ما مهمه در این بحث که ما عدله زیادی داریم بر این که این دوتا از مسلمانان بودن و رسول الله صلی الله علیه و سلام خواستن اونا را شفاعت بکنند. ادله بر این که این دو تا شخص بسلمان بیدند. اولا اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلام بیدند. اماما یعذبان من کبیر. خفی کبیر. بخاطر ای چیزی بزرگی عذاب نمی بنا. این دو تا شخص عذاب می اگر قرار بود. مشرک باشد، خواهد برای ایشی اون جنایت بزرگشون عذاب می دیدند. نه ب عذابش خیلی شدید بود لیکن خصوصا میگه چی؟ فی عذاب عذاب درسته؟ دوو من دو تا قبر جدید دو تا جدید دو تا قبر جدید یعنی دو تا اشخاصی که مصطوم بودن و رسول الله علیه و سه که میگه چی؟ در در در در از مسلمان ها نه از کفار. خب، برای به اصل تحلیل بحثم. رسول الله صلی الله علیه و سلم از کنار این دو دکاب قبور می‌کند. می‌بینم که این دو داشف عذاب می‌بینند. بعد می‌گرم میان، اِنَّهُمْ لَا يُعَذَبَنَّ وَمَا يُعَذَبَنَّ فِي كَبِيرٍ ثَرْبَةَ سُرُقِ الْوَادِ مَدِّ فَلَا إِنَّهُ كَبِيرٌ و در بعضی دیدار صاحی بخاری، و این او کبیر، و این او کبیر. چون یک باهم ایجاد میشه. و ما یه عذابانی من کبیر، اوپی کبیر، با خاطر چیزی بزرگ عذاب نمیبینند. حالا این چیز بزرگ چی خواهد بود؟ این چیز بزرگ به خاطر شر، که بذکر شرک ما چیزی نداریم. به خاطر شر عذاب نمیبینند. بلکه بخاطر چیزی دیگری عذاب میبینن که گناه کبیر است بلا انه کبیر این یک مخرج اول برای شرط این حجی مخرج دوم این که عذاب به بخاطر چیز بزرگ از لحاظ اعتقادشون یعنی اون دو داشت بخاطر کار بزرگی اعتقاد داشتن عذاب نمیبینن بلکه بخاطر چیزی هست یعنی در نظرشون بزرگ نبود بلی در نظر شرق چیز بزرگی بود خاطر چیزی هست که شرق در نظر شرق گناه کبیری هست اون دوتا شرق در نظرشون گناه زغیره بود بعد گفتن گفتم که لایو عذبان فی کبیر یعنی در چیز بزرگی که یک مشقت برشان بود عذاب نمی بینم بلا اینهو کبیر بلکه آن دو چیز چیز بزرگی هست یعنی این دو تا امر کچکی که سخبرشون نبود خیلی امر بزرگی بود. کبیر بمعنی بزرگی شد. بله انهو کبیر ای عظیم. و بعضا کفتن که ما یعزوانه فی کبیر منسوخه و بله انهو کبیر ناسخه. یعنی ما یعزوانه كبير کبیر بخاطر گناه کبیری عذاب نمی بینن این منسوخ میشه با قولش جی انهو کبیر بله ان گناه کبیره هست. تیکن این قول هم این قول خیلی زیفه. این قول خیلی زیفه. اون چیزی هست ما استفاده میکنیم در این حدیث اینه که رسول الله صلی الله علیه و و سلم میفرمایند و ما عذبان زیادی به خاطر چیزی خیلی بزرگ عذاب نمبینن در نظر خودت. ظلال اینه که درستی که اون چیز خیلی بزرگه یعنی این چیزی دیزی که شما فکرش نمیکنید خیلی بزرگه. حالا چرا بزرگه؟ چرا بزرگه به تو جهادی که الله قاضی ما هر عملش. فريحان عمل الذي لو تعمل اولا واما احدهما فكان لا يستتر من بوز بوز يعني قصده استتار ما يكاد از بوز استتار از بوز هلا كل كلمه استتار لفظه دي غيره مثلا لكن افضل اولش استتار اني كده بس كده مينشات اضرار که این ادران وقتی که برخورد میکنه به جسده زفورد نکنه به پیراهنش برخورد نکنه معاذبه به پیراهنش نبود لا يستطر. استطار استار بعضی ها گفتن که نه این استطار مقصد اینه که در گوچه بالا میورد یا حالتشو بیرون میکنه و جلوبه مردم ادران میکنه استطار نمیکنه قلط نمیبروش دیکیم این قلط ضعیفه صحیح اینه که این استخدار مقصد برخورد نجاست با پیراهن و جسم انسانه که سببش متعذی بر افعال دیگر مثل نماز نجاست برخورد بخونه به جسد انسان، به پیراهن انسان سبب میشه که چی؟ نماز درست بشه؟ نه خب نماز درست باشی، فضل جلو چی ای فکر این که بین راجل و بین منجر کی فرق است که اعمال میخواد نماز درست کنه یک مسئله هست فکر و ذهن نمی کنه کله پیش حالتش رو میاره اضرار میکنه مواظب نی مواظب نمی فکر نمی کنه که فردا خودمان گردنش بگیره آه این ای قطراتی بر خودت از اطیرا حالا مسئله بزرگی هست یعنی مسئله خیلی بزرگی هست چون سبب شو که نمازت قبول نشه و اما احده ما بکره منبول و در لا یتوقع لا یتوقع توقیه یعنی قرار نمی داد یعنی قرار نمی از اون ادهار با بکنه لا لا خودش پاک آلدش رو بیرون میارم مثلا به فرد میکنه می کنم بچه هایی چه حتی با وقتی از مردای بزرگ یه روز همین تو حرم بیرستم تو دستشیه ها یه شخصی همینجا در همون باز کرده بود یعنی استدار هم نبوده در بسته میشه یعنی نمیتونه وقت باز این سال آلدش رو در همونجا همون کرد مرد. یعنی سنم کم نداشت میخوام سالش هم. که همچنان جه در مویان ما مسلمان هست. یا مثلا ما داشتیم در خود عرصه. حتی زنان. حتی زنان خوزن مم. آفریسا ایران. پیرانشو بالا میعوردن. در جلو به چی؟ در جلو مثل نمرک. در وسط جهد. پیرانشو بالا همون جدران میگردن. بلا خوزن زن. که میباشرونی هم اتان همخودشو هم دیگران. این دیگ از یک جهد استطار میست. جلو و ملی دیگر. با اون طریق و با اون عجلی هم خودش نجس می کنه هم این مسئله ایش که هست شعر می تذکر بده این مسئله کوچیکی نیست که شما فکر می کنید خیلی مسئله گذار بکرد خود خیلی بهش احتمام دید در بعد از روایت را مده که انا لا یستبره لا برین و برا از پاک کردنه یعنی خودشو از ادراب و اون نجاست از پاک نمی براعت نمیجوست. یعنی خودشو رو کاب حالا یک مبحثی هست در زمین همین که ما موقع بکنیم به حقی علاقه چون امروز برس نقاهد شد مسائل نجاست خیلی کلانی هست. این مسئلهی که شما تحقیق شد. بخواهم از شما و این مسئله. آیا این حدیث فقط در مورد ادرار خود انسان یا ادرار حیوان شامل میشه؟ و اگر ادرار خیوان شامل میشه، آیا وزو، شفند و نبیدونم، گاوش و شطور هم شامل میشه یا نمیشه؟ این مبحث رو بذاریم برای در ساید. یا کسی دیگری بلپرد پیراهنش با پیراهنش با سگی بر کن. یا مثلا با خوکی آیا خوک هم همین چابله همین خوب میشه یا نمیشه مسائل نجاست کلی که این در رو ببندی بالا فکر نکنم <تصفيق> مسائل نجاست را و مسائل استعابت را این بابو و درش ببندیم همین را حدی. چون باب بعدی باب سواب لیکن انشاءالله سعیم کنیم که خیلی خلاصه و کافی و شافی این مسئله اشاره بکنیم خب کافی تا اینجای اینکه ادامه بدیم که پنیده تایی میشه و اما هم یمشی به نمیمه نمم خبرچینه نمم خبرشی. کسی که خبری که از اینجا میشنره به خاطر این که خراب بکنه شخص افرقه بسازه میره به یک شخص دیگه یه که نرو فلان شخص خود نمیمه جاهای غیبت هم دربار میکرد و جاهای همیشه که بہتان باشه جاهای بہتان و جاهای غیبت. در بعض از طرق روایت اومده با کهن احد اما یمشی پل غیبه. سد این روایت اومده. غیبت هم یاد شد. بینشون عموم خصوص هست. نووی در شرح نمام میگه میگه نمام کسی که کلام را به قصد افساد از شخصی به شخص دیگر نخمی میکنه خب اگر قصد افساد نب... نشه. یعنی این تعریف نگاه بکن کلی دقیقی دهید. کلامی را از جای به جای دیگر به قصد افساد دهد. این شخص خصش اصلاحه. مثلا شما میگه در آقای جوهری شما در سشهاگردان اعتنال دارد به مسئله فلانی و فلانی. الان شما قصدتون افتاده قصدتون اطلاح اطلاح اما اگر قصدتون افتاد بود توتره میخوای بودید مثلا بلفرد میخواییم که مثلا بلفرد توماری نوشته بشته یا بلفرد برخوردی بشه مثلا به مثلا مثل آمون یا مثلا بلفرانی گفته بشه بله آقای جوهری فلانه و فلانه و اینجوری تنه کلاس و هدفت اینه که این, این شخص تخریب بکنید. هدف این تخریبه. افساده. شوید قسمت هم ولی واقع امرت اینه. لازم هم نیست قسمت باشه. واقع هم هم یعنی این شخص از خبری از جیلی به جایی که نکن بکنه که خراب کاری بشه. این شخص با توش منامت بکنه. این شخص کاری که هسته که اولیس نمیتونه انجام برسه. اوریث نمیاد خبر شما رو همینطوری از شما به من نقل کنه انتقال بده نمیشه میتونه؟ میتونه یک شخص حاضر باشه که بیاد در من بگه بده اون شخص این چیزین درباره‌ات گفت اگر شخص حاضر نباشه که نمیشه چرا چرا نمی چوزه گناهان کبیره محسوب شده ای دنارو ما گفتیم چون سبب عدم قبول نماز میشه نمیمه چرا؟ چرا میگن انه لکبیر؟ رسول الله میگن بزرگه و دیدن این دو شمس با که صحابی هستن و عذاب بینن، رسول الله میخواد دیگه رسول الله میخواد بکنه، دو تا شمس اضحاب خب حد هم با رسول الله شرکت کردن چرا عذاب میبینن حالا این یک مسئله عقلی هم میرسده که اهلتونت صحابه را معصول نمیبینند. این دوتا شخص اصحاب را عذاب میبینند. برسمان شفاعتشون میکنه. خیلی حتما گناه بزرگی انجام دادن که دارن این حدای میبیند. خب چرا نیمه گناه بزرگیه؟ خب این دشمنی یعنی چی؟ آخرش چی میشه؟ آخرش؟ شاید به قسمون به بزن بکروب بشه، یک شخص راوانی بشه، زده بشه، افسورده بشه. بشه. خلاصش عذیت مردم. عذیت حرامت یا نیز دنان کبیره هست. همینجین مردم را عذیت میکن. رسول داشت الله علی وقتی که در راه مردم ادرار رو نمیدونم اون قضای حاجتش بیرید. یا مناره زمین را عوض می‌کنه روح چیکار می‌کنه می‌کنه الله من غیر الارض. کسی که مسیر مردون را خراب بکنه بره مازیق بره کوشک شخصی عوضش بکنه یا بل کسی که وسط راه مثلا ضرر متحمل بکنه فایی که مثلا مردون زیر اونجا فنا پناه دن و استراحت میکنه چرا چون اذیت دارن پس اذیت جنایت بزرگی هن. که تا جای لعن درباره اون اشخاصی که اذیت میکنن عارض شده کسری کرد خب آیا بزرگتر از این اذیت هم هست از این نمیمه خب بزرگتر از این اذیت بده که تو فجونا هم گرفت آخرش به ختم در چون چجته نمیاد دیگه فرانک اثر رو بکشه چجته میکنه از این غیبت اصلا نمی به برداشتن تا بیرته به بعد پدیده و قسمی یک از ولکن جنایت پس علت یکی از الهت های تحریم نبینه اینه که چی؟ ازیت مردم درشن و یکی از الهت که اینکه که اسلام زعیب میشه مسلمان زعیب و نمیتونن در مقابل دشمن اصطادگی میکنن غیر از اینکه که و پینه و نمیدونن فلان و فلان بین مردم رواج پیدا می خب خب انتوال بعدیششتون نمیزنی برای درس آگه كثير سؤال إذا ندره. بسم الله